عوض بالله من الشیطان الهین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگاران از اینکه در خدمتونستم خود و من در شاکرم خب ما در شبهای گذشته در مورد این سرات و مستقیم و در واقع همون مسیر عبودیت یا همون امامت که هر سه دقیقا یکی هستند و این همان بلکه تجلیه های مختلف داشتن یعنی سرات و مستقیم اگر بخواد تاب باشه میشه قرآن بخواد انسان بشه میشه امام یعنی اینکه چه تجلی کرده و اینا یکی هم صحبت کردیم در مورد اهمیت امام هم گفتیم که بدون او امکان نداره شما به خدا برسید بلکه ممکنه حتی اگر عبودیتم هم انجام بدید اون عبودیت شیطانیه چهار هزار سال سجده کرده 6000 هزار سال عبادت کرده جهنمیه ادعاش هم اینه که من به غیر خدا سجده نکردم خب این اهمیت داره بعد گفتیم مسیر امامت یه آدرس نیست که همجور دستت بگیر باشی بری بلکه در امامت رشد میکنی مثل یه کشتی همراهش میری بعد جزئی از اون راه میشی هر بار جلو میری هجاب ها کنار میری تو خودت شاخصه اون راه میشی خودت هم میتونی دستگیری کنی به خاطر همین هر کسی دستگیری کرده دارو ندارش از بیت. هر کسی هر جا هرچی داره از بیت گفتیم نعمات هم خدا به ما داده باید خرج کنیم مسیر عبودی از مستقیم قرآن یا امام که همش یکی یه حرف اگر استفاده کردی شکر نعمت نعمتت ابزون کنه بیشتر بد میده یعنی فکر نکن خدا مثلا نگه هم داره نه ببینه مثلا شما علم تو داری خرج خدا میکنی بیشتر بد میده انتهام نداره یعنی عزت روز به روز عزت بد میده یا از من یه شو. ببیننن قدر نمیدونی گفتیم یک بلای هدفمند مثل گفت طرف در مورد اصابت گلوله قرار گرفت تصادف نیست مصیبت بهت وارد میکنه که بفهمی این نعمت رو داری در مسیر دیگه استفاده میکنی و گفتیم مصیبت برای مؤمن بلا برای مؤمن یا کفاره گناس یا درجه که ترفیه درجه ما نداریم امام زمان با گریه بر مصیبت امام حسین ترفیع درجه میگیره. خیلی عجیبه ها. یه سوال از شما پرسم آقا رسول الله تو نمازش میگفت اهدنا الصراط المستقیم یا نه؟ قطعاً میگفت نه. کدام سرات مستقیم؟ و اصلا حوز حوزه‌هایی از نور بر آنها او، اونها وارد میشه، باز میشه که اصلا ما نمیفهمیم. ما روایت داریم هر شب جمعه دربهای از علم بر امام گشوده می شود، بر امام وقت. عجب اینا دیگه چین اصلا نمیفهمیم یعنی او هم همین طور سیر الاله داره اما میشه به خدا رسید نه دیگه او هم همین طور داره هی اروج میکنه به سیر من اعتقاد دارم اگر شاید یکی از شاخصهایی که آقا صاحب از زمان رو ویژه میکنه میدونید دیگه توی روایت یه الفاظ برای امام زمان استفاده شده برای هیچکی استفاده نشده میفرماد که وقتی نام ائمه رو میبریم میرسه به امام حسین میگه و تاسعه و تسعت هم ولده و نه تا معصوم از اولاد ایشون و افضلهم تاسعههم افضل اینا همون نهمی است یعنی با اینا چه بس که آقا صاحب الزمان 1100 خرده‌ای سال بر این مصیبت در عشق میریزه هی ترفیع درجه میگیره ما ها چکان می‌کنیم با همدردی با مصیبت ابا عبدالله اجر میگیریم به مخورت میرسیم که زیارت آشورا پر عرضشو گفت دیشب فقط از معرفت گفتم زیاد وقت نکم براعت بگم میشه به خود از براعت میخوام بگم بعد برم توی بحث دیگه تو زیارت آشورا پر از هایی که ما درخواست براعت میکنیم از خدا میخوام گه براعت من اعدائه کن یعنی روزی رزق این لطف کن به من بده هر کسی اینو نده توی محبت محض بی میگه من همه این زمین رو دوست دارم این غلطتی این راه شناسی پیدا نمیکنه میگه همه این زمین رو دوست دارم از این قسمت خوشم نمیاد بعددم میاد میمونم وسط چی؟ راه. لا اله الا الله. و من یک فرو و یه اممن به الله. یعنی در نرفی اثبات نفتن یه چیز جالبتر بهتون میگم سووای که براعت داره صات نداره. خیلی عجیبه ها. چرا چون در برت سلامات هم نهفت است. وقتی کسی لعن میفرسته، لعنت میکنه دشمنان اهل بیت رو، یعنی چی؟ یعنی اهل دوست داره دیگه. میگه من شما رو دوست دارم، دشمنانتونو بد میدونم. پس دوستی هم درش نهفته است. در دوستی محض دشمنی نهفته نیست، اما در دشمنی دوستی هم نهفته است. خاطر همین سوای بالاتر داره از اعلام دوستی کردن. خیلی عجیبه بابا. فرقه های جدید چون مدنانه دکون دستشون بازارشون گرمه دقیقاً همین بخشو دارن میگیرن منتها ما اینا توجه داشته باشیم که داریم میگیم لند یا توهین و مقدساتی کسی دیگه نمیگیم ما بعضی چیزا اصلا خطا مثلا معاویت مقدس هر کی هرکی هر میخواد کجا باشه یزید چه م... در مقدس کسی که م... یزید مقدساتش باشه اصلا هر... اما حالا مثلا برخی از صحابه رو اصلا خطا محض فوان کردن به این ها اون مثلا اینجا علنی بیان بازی اینجا. خطای محضر قصران گناه داره. نمیگم گناه داره. اثبات شده است برا من. چون با شیعیان کشورهای و این تفرقه که داریم این اصلا آی قرآن داریم میگه شما به بوتا اینا فش ندید. اونا میگن به الله شما فوش میدن. خب. آقا به بهانه اون چند نفر میزن و می خدا خون اونا ما میشه. میبینید امام صادق چه جوری اعلام برائت می‌کرد؟ می زیارت خودش رو میگه اللهم الا اول ظالم ظالم حق و اخرت اول می از اول تا آخر کسی که به پیغمبر و اهل پیغمبر ظلم کنه لعنت. این خوبه. شما برادران اهل سنت اون میگن نه ما اهل دوست داریم اما این ماجرایی که شما میگید ما اعتقاد داریم نبوده تو تاریخ. حالا اینا با هم دوست بودن نمیدونم این حرفو. حالا ما میگیم نه اینطور نیست. صرف صحابه پیغمبر بودن اجر و قرب نمیشه تو واضیه. ای ادالت صحابه مثلا از نظر ما چیز بی خودی علمی نیست به سادگه محازم با هر کی هر جا بگی من خودم به شخص مناظره میکنم علمای ما بمانند اونا مثلا حیف هستن بیان جلو والا من, من جغله میام بحث میکنم اونا بمانم تو شبکه ولایت هم بفتم کنم جیگرشو دارید بیاید مناظره بیاید اگه میتونید نمیتونید نمیتونید پس اونم علمی مؤدبانه است تو اما یه سری چیزها هستش که اون خطوت قرمزه حالا نگاه کن من توضیح ببینید من فرازای زیارت عاشورا اینجا جدا کردم پرینت گرفتم ببینید اینا رو جدا کردم کنار هم دیگه بیاد ببینید چقدر وزن براءت سنگینه تو زیارت عاشورا ورزقن البراءتم نهدای گفت فلعن الله امتهن اساست اساس از ظلم بر جل علیکم اهل یعنی لعنت خدا بران اون امتی که تاسیس کرد. همون اول بدعت این کارو گذاشتن با شما با ظلم کرد چه برخه میگن اینا یهودیان که اینا میگن باب کردن ولعن الله امتان دفعاتكم من مقامكم اون امتی که دفع کردن شما رو از اون مقامتون و ازالتكم من مراتبكم ولتي رتبكم الله فیها میگه اون رتبه که خدا به شما داده بود اینا نمیتونن سن ببینن کشیدنتون پایین ولعن الله همتان قتلاتكم امتی که شما رو کشتن ولعن الله به اللهم من قتال نه خودی که کشتانن که باز همراهی میکنن اینا میگه برای تو الاله تبری می جورم از اینا به خدا و الیکم و به شما اهل به من هم از اونا من به اونا هیچ کاری ندارم و من اشیاه اهم از پیروانشون و اطباع اهم اونا که تباید میکنن و اولیاء اهم و دوستشون هر کسی که با اونا رب داره من اعلام بیزاری میکنم من هیچ ربتی به اونا ندارم نه اینکه که فقط خودشون میگه اونا که باز رفیقای اونا ببین دشمن شما رفیق دشمن شما دشمن رفیق دشمنه شما بر من دشمنه خب حالا این اصلا مبنای جمهوری اسلامی باید باشه ای حادم نزلله معصومی باید ممنون جو... یعنی اگر ما یک کسی یه جریان فکری با اهلوی در تضاده اون که باش مشکل یکی با اونو دوستی کنه با اونم براعت بد بجویی این هر وگرنه نه یزیدی وگرنه نه یزیدی شوخی نه آقا به ضرر تامشون به داره ابین برو برو به گندماری برس ببینم کجا میرسه شوخی نداریم تو این زمینه مگه نخوندم سوره توبه 24 رو میگه اگه از ننه بابا پدر مادر زن بچه چه میدونم اموال خونه تجارتی که می سودش کساد بکنیم بکنی اگه نگذری در راه خدا و پیغمبرش و جهاد در راه خداش فاسقی شرط دین نداره شوخی نداره نمیشه بله. به خاطر همین با حسین نمیشه ماسمالی کرد رو حسین بن علی تیقی که یه قربالی که همه چی جدا کرده نمیشه مسمالش کرد لعن الله آل زیاد و آل مرمان و ولعن الله بنی امیهن قاطبه قاطبه این همهشون بنی امیه بنی امیه از بیرون نیومده یکی از یاران امام محمد باقر اومد گفت یا داش اش میده آقا محمد آقا رو گفت چه گفت چطور اش نریزم وقتی من از بنی امیه چیکار کنم اجدادم چی من بنی نبنی ام حضرت تو از مایی تا از مایی مگر نخوندی که خدا در مده حضرت ابراهیم گفت یاران ابراهیم کسا که تفکر زوریه ابراهیم کسا این که از ابراهیم قبولش دارن نلزمان بچش بشه تو از مایی چون ما رو قبول داریم یعنی این بنی امهی تفکر امهوی مدن نظر اسلامی که تو چی بود؟ محابی امه چی گفت؟ موا بهم گفت وقتی امام حسن زد کنار اومد تو مسجد سخنانی که گفت ببین من نه نمازتون کار دارم نه روزتون روزهتون کار دارم نه با حجتون نه با زد... اینقدر نماز بخون تا جونتون دارم من حکومتو می‌خواستم که گرفتم اینا مال خودتون برید صبح تا شب نماز بخون به خدا الان همینو میگن میگه اسلام عربستان اسلام ترکیه اینو میگه میگه اینقدر نماز بخون تا جونت درات تو به تو چه به اسرائیل چی کار داری اساسات اساسات ظلم ول بالجور رو کار داری به تو چه ربطی داره حالا چهار تا فلسطین میزنن به تو چه بابا رسول الله گفته من اسم بحولم یحتمه به امور المسلمین فلیس هو مسلم کسی که شبش و صبح کنه به فکر یه مسلمونی نباشه مسلمانی نمیگه گفته که گفته من سمع رجلا فنادى الا المسلمین فلم یجب فلیس به مسلم یکی که شبش و صبح کنه من بشنو یه مردی داره داد میزنه آقا بیا کمکم کن جوابش نده مسلمونی اون دنیا با توی مشهور محفیور نمیشه هم جوداست آقا بیایی ماسمالش کنیم با حسین نمیشود ماسمال کرد اصلا حسین آمد تا عبد خط حق و باطل از هم کرد میگن شیطون لذت میبرد وقتی اون کشدار داشت صورت میگرفت تا موقعی که علی اسقر آمد که اینا در مورد شیطان انسی هم نقل کردن که وقتی حرم علی ازقر علیه السلام رو زد گفتن خراب شدی اینو دیگه نمیشه جمعش کرد. بغیرا هم شجما اسمالش کرد. این جمع شدنی نیست میگن شیتو صحیحه کشید بعد ازش راه گفت اشتباه کردم. اشتباه استراتژیک کردم نباید این این عاشورا به تا ابد حق و باطل سمجا داشت. یعنی نمیتونی ببین نمیشه هم حسین را دوست هم یزید را نمیشه. نمیشه هم حسین ابن علی رو دوست هم سر سفره معاویه نشست. نمیشه. نمیشه خب بغض مت کنار هم باشه. بغض محض غلط که میگه از حب بهلی نیست از بغض ماوئی. یه کسایی تو صفا امیرالمؤمن بودن با معاویه می‌جنگیدن، حضرت علی رو اصلا قبول نداشتن. با معاویه پدرکشتگی داشتن. اونا بعدن چی درست کردن؟ خبرش؟ شو. این هم غلطه. همون‌چی که حب محض غلط کاریکاتوری میشه دیگه. چهره کاریکاتوری ارادش چیه؟ دماغ گنده چه شو درشته؟ پدر نمی‌خوره. فد همه چی اندازه باشه خب حب حببغ کنار هم این حببغ مقدسه بله من مثلا با این جریانات سیاسی چپ و راست بالا پایین چیزی کاری ندارم خب هیچ کاری ندارم بچتون از دولت‌های هم که اصلا بودن و نبودن و کار ندارم اما من خودم به نجاست مرگ برام یعنی مرگ بر امریکا. آمریکا گور پدر بگو گور پدرستون چی انو بله میشه عزت نداره نو این کرد؟ اونا الان آمریکا الان نیازمند مستوی منطقه اینو به شما بگم تو سوریه گیر ما شما خبر ندارید من عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات آمریکا هم. مدتی مسئول مؤسسه مرکز مطالعات راهبردی آسیای غربی و افریقای عربی بودم یعنی خاورمیانه به اضافه افریقای عربی یعنی هر دو تا اصلا رژیم صهیونیستی جزئی از اون منطقه مطالعاتی که بوده که حقیقتا اونجا مسئولتی داشتن کار میکردم خوب هر دو جریان میشناسن اصلا ذات اینا با ما اصلا آبروغن اصلا امکان نداره بزنی من میگم ذات جمهوری الاهوت متحد بر مبنای فراماسونری و صهیونیسم اصلا امکان نداره اینا بتونن امکان نداره روز آمریکا بتونه اسرائیلو پاس بزنه اصلا آیپک نفوذی در ایالات متحده امریکا داره که اصلا به مخیلهتون نمی گنجه من امریکایی ما امریکای ماک مارک ادوار ببرو برشم امردم ایران سخنه کرد اومد یه چیزی گفت من مجبور شدم برم ماسمالش کنم یه <تصفيق> دم دیگه ترسون مردمو گفت امکان ندارد روزی ما مردم امریکا از دست سهیونی ساره های یابی چونان بر اقتصاد و ما و کنگره ما سیتره دارند امکان ندارد امکان رنگو سفر احتمال من رفتم گفتم نمیشی ما بررکس از این وقت به خدای اعتقاد دارم که فیروز. حضرت مظن نون فرون خورد. پوستش هم کن این خدای ماه خدای ما تا ایرانی انقلاب بیرون کشید علیه اسرائیل که رفیق ترین کشور با اسرائیل در منطقه ایران بود. رفیقته اصلا فکرش رو کار خدای ما کری خوندنه. واسه کی که واسه کری بخونه؟ ما اعتقاد داریم. ما اعتقاد داریم از دل آشورایی که کتک خورده شد، یادت آسود شد یا نشد خیلی عجیبه کتک خوردیم امروز حس بیاد ولی جریان یزیدیه زامونا من مر بر آمریکا ولی که مر آمریکا برای چی برای اون سالها دروغه سر پدری که از مادر آورد سالها حق توحشی که سربازاش تو فیش حقوقیشون میگرفتن با که تو ایران دارن کار میکنن مشاوراشون ما ننگ ابریزو تو فیش حقوقی نمیشه حق توحش چون بین وحشی ها شما داری خدمت میکنی بعد پول اضافه میگیری بله مرگ بر اون زمان اون گردان ارتش که مرگ باید گفت بر آمریکا بر اون گردان ارتش وقتی سگ فلان مستشار آمریکایی تو افسری تو فیروزه قصر فیروزه گم شد یه گردان ارتشو فرستاد تو خیابون به دنبال طول سگ این بگردید یه عزته اون هی من نازله نخواستیم ریت مال خودت گندمای ریت مال خودت این به این معنی نیست که نه مثلا که آ ما کاتو جیزی آخیش نه بیا جلو تام سی باقی کشورا ببینم چی میگی حرفتو گوش میکنیم فهمی با کفار و مشرکینم رفت صلح حدیبیه امضا کرد اون تا مدارانه بود دو سال بعدش فتح مکه رو داره نازیم برای بوم بیافتینه از اون بره بوم تو بحثا که پیش اومد من تو وبلاگ مثلا پست سیاسی اونجوری نداشتم اما سر بحث مثلا هولوکاست من پست گذاشتم گفتم آقایونی که اطلاع ندارن سر در نمیارن خواشن ازار نظر نکنن کلوکاست جوکه من تخصصم جوکه من تخصصم مضحک حالا این بحث سیاسی شما دارید شما بحث سیاسیتون میکنن منم اینجا داده خودم میذارم اینا با هم قابل جمع هم هست بتون بگید اون جریان اله یوم القیامه میگه این جریان برایت رو تا روز قیامت من ادامه میدم. خب یعزید الان نشون بده بسمانم. شم رو باید نشون بده وقتی میگه اله یوم القیامه. اگه مگه میشه آقا ما هو به اهل بید داره خب چی میخواست؟ به من بگیره خدا وکیر حسین ابن علیه امروز بود نسبت به مسئله فلسطین، سوریه، لبنان تفاوت بود. اگه جواب اینو دادی جواب الان بده. خو خب نمیخواد دنبال امام حسین بکشی بیاری الان همین الان امام حسین الان هست امام زمان ظهور بکنه نسبت به فلسطین بی نسبت به کشتارهایی که داره توی فلسطین میشه بی نسبت به کشتارهایی که تو لبنان دارن میکنه نسبت به کشتارهایی که سلفیا دارن میکنن تو سوریه یا بی نسبت به هر نوع ظلمی فکر بی تفاوت مطلقاً خب اینجا اون جریان تا ابد جدا میشه تا ابد جدا کرده یه جایی تو زیارتش رو فوش میده به فرد، یه جا فوش میده به جریان فکری. بنی امیه تن قاتبه، قاتبه این جریان فکری خطرناکه و لعن بعد برو و ولعن الله ابن مرجانه، لعنت خدا بر پسر مرجانه. لعن الله عمر ابن سعدم و لعن الله اشمر اینجا فرد میگه. یعنی بعد یه جایی مرگو بر فرد گفت، لعن رو بر فرد. من واقعا منتظر بودم تا تو هیئات مرگ بر آمریکا گفته بشه گفتم میگم مردم آقا برعکسستون بگم ما وقتی شما این داد و بیداد بکنید دولت راحت‌تر میتونه برم مذاکره کنه میگه ببین مردم ما راضی نیستن خود آمریکایی‌ها دیدید الان یکی شده پلیس خوب یکی شده پلیس بعد کنگره میگه نه دولت میگه آره بعد دولتش من میگه نگاه کن کنگره من مخالفم منو قدر بدون معلوم نیست چه رازی تو ادب علوم سیاسی خب این بحثی یه چیزی دو تا چارتای الله شمرا و الله و الجمد و تنقبت لغ لعنت بر اون امتی که زین بستن. نقاب زدن. لجام زدن. ببین؟ نمیگه اونی که اومد کشت. میگه اونی که برای این لجام زد اومد. اونی که رو زین کرد کوفه فرستاد. بعد از این احمقا به اندازه جوه اصبشون فقط طول بهشون دادن اومدن برای کشتن ما موز چه بدبختی اون باز یعنی بهش گفت بیا به جنگ قنیمت هرچی برداشتی بس خود که برداشتی هرچی قنیمت برداشتی بس خود اما امگو تو را امگو پول بنزینی تو میدم پنجاریت بنزین بیده از کوفه خوش برسونه تا جربت. جوه اصبتو بیدن تو بید میدم توفره یه جوه اصب بیدن پاشو بید. و اومدن به جنگ کی؟ به جنگ کسی که هدایتش. به جنگ سرات مستقیم. شروع کردن با ماشین میزدن به این گاردیا. یا. اینجوری بود. دیگه سرات مستقیم اومدن به جنگش. و بالبراعت من من اسس اساس زالگ باز دور برمیگن رو اسس اساس زالگ و بنا علیه بنیانه اونه که بنیان کردن این رو و جرافی ظلمهی و جورهی علیکم و علا اشیائیکم بره تو و علیکم من هم و بالبراعت من اعدائیکم و ناسبین لکم الحرب و من اشیائهم و اطباعهم خیلی عجیبه هی خودشون میگه هی دور بریاشون میگه یعنی تو اگر میگی علایا یا قیامه، بعد بتوانی بشناسی. بگی این داره من میزنه، کی پشتیبانشه، کی بهش توپ میده، کی بهش تانک میده، تو هشت سال جنگی که این باتوی ما رفتن کی چه تیکه, تیکه شدن؟ همه این هروم لقما کمک کردند. همه این هروم همین کوچ 6 میلیارد دلار پول دادن. میفهمی چقدر؟ اون زمان 6 میلیارد دلار پول دادن. همین اردن می دونی پول داد؟ فرانسه میدونی دونی چه در اختیارش گذاشت. آلمان و هلند و امریکا تجهیزش کردن با سلح های شیمیایی بعد امریکا اومد تو سوریه میگه سلاح‌های شیمیایی این نا اینجوریه یه مستند از من صد و ما چه غلطی داره میکنه چی میخواد بفهمه که اینا نه کی میخواد درست اساسینه پخش کنه یه مستند من دارم خود صد و سه ما ساعت تقریبا دو اینس گذشته بود یه هواپیمای سی 130 برداشت این مجرای شیمیایی ما رو آلمان اون پزشکای ایرانی که موقع درس پزشکی میخوندن و رفتون با مصاحبه میکرد چه مستندی بود میگفت وقتی اینا رو آورده میگفت طرف یه تاول زده بود روی شکمش خب انقدر این تاول بزرگ بود پر آب بود یعنی انقدر انقدر تاول میگفت ما نمیدوسیم چجوری ببریم میگفت طرف دائم خرخر میکرد خون بالا آورد. با کی به اینا داد کی الجمت کرد کی اصر کرد کی اینا رو... زین بست به اینا گفت برید بزنید این اینا رو تیکه پاره کنید. نه ماد بیان جواب پس بدن شوروی چقدر کمک کرد. من سخنوت گفتن یادوار شاهده کردم همه رو بر اسناد بر اساس اسناد کتابای خودشون که بعدن که بهام دعواشون شد بلوک شرق و بلوک غرب شروع که دیگه لو دادن. سگ و گربه به جون هم افتادن اون موقع اینا لورم. اگه بدونید چه خیانت‌ها کردم به ما عملیات کربلای 4 ما رو آمریکایی‌ها لو دادن، پرپر شدن بچه‌های ما. هنو داره شهید میاد همین دیشب من رفتم جایی تا ساعت 2 نصف شب هم اونجا بودیم یه شهید تازه گمنام پیدا شده بود آوردون توی حسینیه گذاشتم این جمع خصوصی چند نفره بود من اونجا بودم هنو داره شب بابا کدوم رو دیدی روی تریلی شهید تشییه بکنه روی تریلی اینا آدم نبودن اینا جوون نبودن اینا مردم من تو دل نداشتم کی پشت سر اینا بود اگه این بغزه رو دل منو تو بکشن بعد اون موقع میشه دست داد با اینا اون موقع میشه با دست داد چون خبر نداره کتاب درسیش نوشته چقدر جنگ نوشته تو کتاب درسی هیچی ننوشته خبری نیستش اینا باید گفته بشه اینا باید زنده باشه بعد همیشه باید تو ذهنها بمونه اگر تو ذهنها نمونه داغون میشین اون زمانی که دیگه هیچ وقت نمیفهمه بچه من نمیدونه میگه ای اینا, اینا تا فیلم دیده. نمیدونه همه سلاحی که تو فیلماشو نشونده نه همه رو علی ما استفاده کرد ما با بعضی از تانک های با موشک نمیزدیم میگفتیم قیمت موشک از تانکه بیشتره به خدا قصم با اون موشکها آدم زد سد از کجا آورد چی بهش میداد چون خواهد اون همه هزینه نیروی انسانی دیوی سه هزار دستگل که الان میبودن هر کدومش یه برای این رو گرفته بود. یا زیر بارو گرفته و بیشتش کار میکرد کی میخواد جاوانو بده؟ فقط صدام رو از اون موقع صدام حسین بود اسمش دیگه گفتن صدام یزید کی بشت سر صدام یزید بود؟ کیا لجام زدن اسبشو گفتن برو به تاز بزن. بزن اگه نفهم این جریان ها حسین این جریان تا و همین صدام ملعون میاد به توپ میبنده حرم مام حسین ها سخنرانی سخنانی سرخ گفتم این داماد ملعونش حسین کامل اومد به توپ بس حرم ابوالده گفت من حسین تو هم حسین میزنم بگیر وقتی دنبالش داشتن میکردن رفت تو کربلا چلو کربلا جلو حرم امام حسین گرفتنش ببینید که صدام سر اینو برد برید باز بوس پسرماش بودن جنازه صدام بعد از مرگش از قبل بیرون کشیدن داستانی داره اون موقع تو حرم داشین صدام میاد آره منم حسینم تو هم حسین این دفعه من میزنم تو بگیر جو حسین ابن علی در افتاد و ور نیفتاد یه حقیقته اللهم لن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم <العی> من چ اللعنه ابد الابدین و هاذا <آبدین> <العزا> یوم فرحت به ای آل زیاد می این روزیه که اونا آل زیاد و آل مروان به قتل هم الحسین همشون شادن همشون خوشحالن یعنی نگاه کن اینجا من لعن میفرسم اونایی که از این شکست خوشحالن از این قتل و از این کشتار خوشایند بر اونها هم میگه لعنت اللهم اللهم فظائف علیهم اللعن اضافه اش کن من هر چی لعن میفرسم تو بذار روش دو برابرش کن منک بالعظام بالعلیم یه عذاب دردناک هم به بر اینا برای بفرست اللهم ان تق ای... اینجا اش خچ الله اللهم انی اتقرب فی هاذ و فی موقع فی هاذا و ایام حیاتی من میخوام به تو نزدیک بشم تقرب بجویم نه تنها امروز تمام ایام حیاتم بل براعت منو میگه من با دادن به اینا دوری جستن از اینا لعنه بر اینها به تو تقرب بجویم. خدا. یعنی وسیله رسیدن به خدا وسیله توی سرات موندن و مراقب بشه از اون جاده خاکی ها میگه من با براعت از اینها تو جاده موندم و لعنت علیه هم آخرش هم بازی لعنت میذاره این زیاره تا شورا مونا لعناش یه جا جمع کن ببین چقدر لعن داره اللهم لعن اول ظالم انزل حق محمد و آلمان و آخر تابن لعن میگه اولین کسی که ظلم کرد لعنت تا آخرین کسی که داره تبعیت میکنه عجب تبعیت میکنه آه؟ یعنی اونم یه جریان فکریه جریان فکری که ابلیس خب اهل بیت شدن سرات مستقیم امام شد سرات مستقیم قرآن شد سرات مستقیم عبودیت یعنی سرات مستقیم شیطان چی گفت گفت لعقدن علی سرات لعقدن نس تو قسم توشه ستو عربی توشه من توی سرات میشینم یعنی چی یعنی سراتو میشناسه یعنی میشناسه یعنی شیطان امام شناسه یعنی سراتو میشناسه یعنی شیطان قران میفهمه چیه میشینم لعقدن علی سرات اونا ف به عزت کله عقویان نه ام اجمعين عقواد نقطه مقابل رشته چقدر جالب این مسیر سرات گفتیم آرمان چیکار می‌کنی رشت می‌کنی لعقویان نه ام اجمعين می‌شینم سر این سرات همه‌شون رو می‌فرستم جهنم خداش ببینم چرا میه برای اینکه خدا تو جلوی ی منو گرفت قالف ف به ما عقویتنی خدا جلو رشت منو گرفت نمیفهمید که ابلیس اگر سجده رو می‌کرد رشت می‌کرد نفهمه ابلیس یه نادانه نفهمید که قد دقیقاً رشدش در همون چی بود؟ سجدول مثل کی؟ بس جبرئیل. مثلا میکائیل، مثل, مثل, مثل اسرافیل اینا سجده کردن، رشد کردن. اللهم باز دوباره. و آخر تاب الله علاک. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین و شايع و بویت و تاب و با بویت علاقت تابت علاقت لا دوباره شايع و بویت میونه که مشایعت که اون که بیعت کردن فقط به با اونها واس. عجب اللهم مخصص مخصوص اللهم خص انت اول از ظلم بهلحننی و بدبع اوله و و رابع. <اللهما لن يزيدا> <خامسا> ولن. <العبید الله> و جریان <شمرا> یعنی هم فرد آل میزن هم جریان فکری خب این براعت یعنی چی؟ یعنی به نفر یاد میده چی میگیم؟ یه خط وسط رو داشته باش به گارد نخور برو دسید خط وسط رو داشته باش اون چیه؟ اون دستورهای عبادی خداست اون هم چیه؟ خطره بری اون طرف یه جاده خارجی تصادف اون جد میرید دیگه. دیگه خیلی دوست داشته باشم یه هم ماشون مصیبت بر برات وارد میکنن تو بفهمی نعمت ماشینو رو دست میگیرن تو بفهمی ما این ماشین باید این اینوری میرفتی. نه اینوری از دست میگیرن به غلط کنه میفتی. هی باز بهت میدن دوباره باز میزن جاده خاکی قرار هی بزنی جاده خاکی چون ده میلیون عمرش تماشا 10 کیلومتر بیشتر نندا خود زرد بابا داری به خدا قسم با این 60 70 سال عمر برای یک ابدیت داری کار میکنی میدونی چه خطری داره تهدیدمون میکنه ما رو خیلی وا تنمون بلرزه خدا شد وقتی 670 سال ام که تا الان هر چقدر گذشته نفر چه جوری گذشت بعد اینم هم همین جوریه خودت تو ذهنت عمرت تو چک کن تا الانش نفهمی چه جوری گذشت مثل با به خدا چه جوری گذشت یادت نمی بعد اینم هم همین جوری می‌گذره بعد این قرار نیست همین جوری بگذره دیگه قرار تصمیم بگیریم نه درست بگذره نه تو عبودیت ماییر هر وقت حساب بگیری تازه است مثل کی مثل حور کربلا اثبات می‌کنه هر موقع برگردی جا تو هست مثل زهر مثل وحب نصرانی تا دلت بخواد از این شخصیت ها و کارکتر ها داره کربلا ما ما نمیشنسیم از 72 راست اسمشون رو بلد نیستیم بگن از 72 تار اسم رو تا ها رو بگیم هر کدام اینا یک داستان یک سناریو داره بعد اما اون زمان سناریو رو برام باز بکنیم با اونا یاد بگیرم روشت کنیم چرا؟ چفت بفتیم امام راه اینا همراهان هن همراه خوب. اصلا دیدیم یا تو سفر داری میری با این گرم صحبت میشه اصلا حالی ده میشی که رسیدی تنها که میری خسته میشی خطر تصادف هست خوابا، چشت خوابش میگیره ممکنه خدا چپ بکنی هزار جو داستان هست اصلا احسابت خوب میشه اصلا آدم نیاز به هم را داره طرف تو ماشین میشینه یا رادیو رو شما یه زبط. نیاز به همراه داره تو راه رفتن نیاز به همراه قرآن اگه میگه سراد یه مثالی میزنی که خیلی چیزاش جوره برای همونم هم من مثال همین راهو انتخاب کردم میبینی هر هم میگم جور در میاد قرآن میگه کلمه طیبه که شجر طیبه گفتیم کلمه، کلمات الله کیان؟ اهل بیت. قرآن میگه شجره طیبه همون کلمه طیبه از اصلش من اینجا مثالش زدم به شجره حضرت آدم به کلمه طیبه نزدیک شد شیتونم گف گفت میخوای شجره خلد کلمه خلد کلمه که ابد ب... به بهشت اصلی برسی میگه که یعنی مانند مثل اصلها ثابت و فرعها فه سما قرآنه میگن اصلش ثابت تنش فرعها یعنی شاخاش کجا؟ آسمانی، سماواتیه میگن اصلها امام و فرعها ولایت. این فرعشون ولایت امامه. که شما من بگید نگاه کن تو این شاخه ها رشد می ببین؟ بگم با امام رشد می از این آبی که از ریشه ها می گیره تو هم جزی از اون شاخه ها بشی تو هم تقضیه می کنی تو هم رشد می کنی با رشدت باعث رشده یکی دیگه می شی مثال قشنگی زده شجره تو آتی و کله ها کل حینم بذنه و میگه گه به اذن خدا همینو به اذن خداست. میوه میوه شی میوه علم عقل دانش شعور فهمه به عقل میرسه الان اون ها تو رو نوشتن اون درخت دانش رفت میوه سیب رو گرفت به دانش رسید همین سیب دهنی یا سیب گاز زده همین آرمه شکل اپل یعنی ما به دانش رسید تورات میگه دیگه میگه بابا اصلش اینجوری تو به علم و عقلانیت میرسی نه با اون چیزا که میرسی به بعد فلزا چی میتونه به عقل برسه؟ کسی که از طریق ولایت روش کرده ولایت اهل بیت و بلا در غیر صورت میره تو کجا؟ شجره خبیسه آیه بعدی یه کلمه خبیسه که شجره خبیسه یه کلمه خبیس مانند شجره اون چی؟ اون میبشت جهله یعنی اگر از طریق ولایت روش نکری میرسی به جهله من مات ولم یعرف امام زمانه ماتم میتتن؟ هر که از این شاخهی ولایت میوه نخورد. میوه چی خورده؟ هندونه ابو جهل خورده. هندونه هست میوه هست. همه هندونه ابو جهده. تلخ و زهر ما. به خاطر همون اون دنیا میوه های جهنمی های میگن هندونه ابو جهله. چقدر جالب. او میشه خوک، کسیفی، تلخی. این شیرینی ای زیبا. آقا رسول الله خواب دید از منبرش بالا، چی ها دارن میرم بالا؟ آیه چیز دیگه شجره ملعونه همین شجره است میگم پیامبر بعد از اون خواب کسی دیگه خندان ندید انقدر برش سخت گذاشت که خدا بهش گفت ندرس ان انزلنا فی لیله القدر وما ادراک ما, ما لیله القدر تو چه می‌فهمینه لیلت یعنی فاطمه قدر یعنی خدا گفت ما یه فاطمه بهت دادیم القدر خیرون اهل شهر طول حکومت بنی یه تقریبا هزار ماه بوده یه فاطمه لازمه همه اینا تمام میشه رو میکنن بعد میگه شجره خبیزه ویژگیش چیه میگه این برعکس ریشه تو جایی نداره یه بادی میاد میبره این ازش اما شجره تهیبه اصلش تو زمین فرع حافظ سما سماواتیت میکنه میری بالا بعد نگاه کنین میگه ش شا... رو میگم میگه شاخه های اون این درخت تهارت رحمت عافیت، ایثار، انفاق، عبودیت، عبادت، جهاد، نماز، روزه و تمام افعال و صفات پسندیده هست. چقدر میشه چی؟ عبودیت. تو عبودیت باید چکار کنی؟ قوانه رانندگی رو گفتا. نماز، روزه، همینه همینه تو این شاخات رو رشد میکنی. میری بالا تو خودت شاخهی. از تو قرار شاخهی بروید. خیلی قشنگه. یعنی اصلا چیزی خودتو جدایی از امام نبین. تو در وجود امام باید رشد بکنی. امام به سر رشد توست. امام زمین رشد منو و توست. امکان نداره. ببین این لامپ نور داره. هر لحظه سیما قطب بکنی چی میشه؟ تاریکش محصه. دائم نیاز داری برای نور دادن. فلذا اگر شیعه میشه مصباح. نور میده. تا کی نور میده؟ تو موقع ک قط بشه چی میشه؟ کات تمام. تمام بوده با طرف از یاران امام زمان بود شد مقالی چی شد؟ علیه امام زمان کتاب نمیشه برای چی؟ برای من نشدم نایب خاص نمیدم فلا کات یه ده قصد ببین یه دقیقه حضرت عباس علیه السلام براش اما ناما بردن اگر میپذیرف الان ما اینجا شب حضرت عباس و اینجا چیزا بگید نمی گرفتیم یه جرأت نمی‌کنم بگم واقعا صحبتوندام راز و پاز چیزای دیگه بود یه امان نامه خیلی هم جگر میخواد خدا شد بعد فکر کنی یه طرف 30 هزار نفر آدم اینجا همه گاشتن در رفتن 70 نفر آدم مونده بعد میدونه اونا چی ان بعد شروع می‌کنه سراغت میسراقت شیطان میسراقت میگه که بابا قطعاً اینا که قتلوا میشن تو یه ادا در بیار که مثلا من چیزه من باشه برگشتم بعدا تو بمونی باز کار کنی یه قیام دیگه درست کنی آن. شیطان همینجوری به تو جلت خدا شد ببین اگه ما بودی همینجوری میبود برامون تزیین میکرد زویناله هم شیطان و اعماله هم نمیرفتی چه بس هم میرفتی این یکی میشه عباس خدا شاهد اسمش رو میبرم خدا شاهد خدا گواه مثلا امیره یه کاری کردی یه شاهکاری خلق کرده که بعید میدونم من علمدار آقا صاحب از زمان آقا ابوالفضل فضل عباس میدونم علمدارشم او باید رجعت کنه برگرده هیچ کس دیگه مثل اون امتونو علمداری کن. شاید آید به جهان اگر حسین دیگری حیحات برادری چه عباس آید یه امام زمان دیگه میتونه بیاد اومده داریم اما عباس دیگه اصلا نگار نشدن چه که؟ چجرد یک کاغذ بود قبول می‌کردم اون بود یک کاغذ بود یه برگه اومد اون عباس دیگه آقا ما محمد وقار فرمودن که این شجره همون شجره توباست که تو قرآن شما می ببین همین شجره و شجره توبا ببین چی میگه اصل و ریشه درخت توبا در بهشت در خانه رسول الله و علی بن ابی طالب علیه ما سلام است میگه این تو خونه علی بعد از رسول الله پرسیده بودن قبلا که یه بار تو گفتی شجره توبه رو شش تو خونه من یه بار گفتی تو خونه علی چی شد گفت خانه ما هر دو تا یه جاست شما نمی‌روز زمینو دارید آقا رسول الله کسایی که مکه رفتن میدونن میمد میرفت تو محراب تحجد. همون همونجا تو خونه خودش میتونست نماز بخونه میمد تو مهراب تهجد خونه علی و فاطمه رو در مسیر قبل قرار میداد چی میخواست بفهمونه و چطور دیگه باید بفهمونه بعضی میگن آه حضرت رسول به امامت اشاره کردن میگم تو بگو به چه لفظی باید اشاره که تو من تا کتاب من تو کتابه برادران اهل سنت برات بیارم این نه بردم نامردم بگو امام بگو خلیفه بگو آقا بگو دانشمند بگو شجاع هر چی باید میگفته هر چی تو بگی من برات میارم یعنی تو امشب ببین بگو من فردا شب با سند برات میارم رو میخونم ما بعضی از اینا حتی کتاباشون عکس هم گرفتیم دیگه فعلا دارن کتابارو تصحیح اسمر حس میکنه به مرزام میشه عکس کتاب هم داریم. نماد براءت علی کیه عباس ابن علیه وقتی امان نامه برش میارن داستانی داره اون شب اصلا عجیبه ما یه خورده بحث کنیم من من خود حضرت عباس تو میخونم تو بفهم براءت یعنی چی عشق میکرد ابو عبدالله وقتی حرف میزد اصلا حرف دل ابدلول بود ببین امام زمان خیلی وقت دوست دارهی که حرف دلش یکی دیگه بزنه به خاطر حضرت امیرالمومنین میگفت عینا عمار کو عمار من میگم اصلا شما نمیفهمید یکی بعد خودتون بگه عینا زو شهادتین عین ابن طیهان کوشن اینا همشون رفتن ببین حضرت زینب دید آروم آروم ریزه شروع شده تو رو میپیچونند دیگه تر ماپی چوند رپ یکی بیجون رپ همینجوری میپیچونن رسید اون خیمه و خاموش کردن آتی شدی همه در دج... کسی نمون بعد چی میاد؟ بگو... بگید حالا اماننامه حالا با تقدم و زمانش هر که هست میاد حضرت زینب نگران میشه عجب خیلی عجیبه ها داریم تو تاریخ داره صحبت میکنه میاد پیش آرومارو پیش حضرت عباس میاد شروع میکنه صحبت رو بازگره یه طرف خجالت میکشه بگه به عباس که اما نامورد اومدن یه وقت نکنه زن دیگه دلش لرزیده میگه اینا فردم خود چیکار کنه کنن هزار نفر کسی نمیده همه امیدو به این سه چهار نفر اصلیاس عباس و علی اکبر و اینا اینا برن که دیگه میگه که شروع کرد مثلا چجوری نمیتون صحبت آدم نمیتون صحبت شروع کنه گفت عباس شنیدن برات اما نامور اومده نکنه حضرت عباس گریه شد گید. او دست شما دارد نکنه چی فکر شدید در مورد تا صبح قدم میزد عشق بریخ خدایا دشمن در من چه دید که جرعت کرد اما نامه بیاورد من کجا گاف دادم اینجوری فرض بکنیم که دشمن جرعت کرد بر من اما نامه بیاورد من دیدم بعضی از این دخترای افیف تو خیابون یه پسر میشون متلک می نازه میاند خونه گریه میکنه خیلی جالبه. دیدم خودم. آرشان گریه میکنی تو میگه آخه این مگه من چجوری بودم که این جرعت کردم من میگم بابا آدم های مریض هستن به همه اطلاق میدازن شیطون به هیچ که رحم نمیکنه و حضرت ابراهیم 99 سالش شده میخواد به امامت برسه پیغمه را علال ازمون رحم نمیکنه بابا شیطونه برای همه میاد فلان حضرت عباس اش میده چی در من دیدن کجا خطا کردم که اینا جرعت کردن یا همچین قلطی بکنم. من برم یه تیک از روزه خو... میگم روزه خدمت شما عرض بکنم از خطبه حضرت عباس کنار خونه کعبه را تو بخونم متاسفانه 99 درصد شیعه اینو نشیدن مخونم بگم 99 درصد خیلی کم اندک حالا من میخونم انشالله این فیلمش هم پخش میشه از وقت خودتونم هم خیلی قشنگ کنار خونه کعبه حضرت عبا عبدالله تصمیم گرفته بره چی شده ببینید خیلی دردآور این هروم لقمه ها آدمایی رو فرستادن مسلح می اومدن کنار امام حسین میچرخیدن تو کعبه شمشیرها رو نشون میدادن اصلا حرامه با شمشیر اونجا رفتن کری میخوندن شمشیرها رو نشون میدادن گفتی یه گفت, گفت برید اونجا یا بیعت بگید یا سر حسین رو برام بیارید یزید گفت اینا اومده بودن حالا حضرت عباس شاخوشونه کشیدن اینا رو میبینه میخام مستند براتون رو بخونم رف بالا وایستا امام حسین این طرف خونه کعبه می طرف کیو مورد سخن قرار میده حاجی ها کسی که حاجی میشه من مسلمونی مسلمونه دیگه مسلمان زارمون ادعایش هم میشه مؤمنه ببین به مسلمانان مؤمنانه که امام نشناختن از را صحبت میکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذي شَرَّفَ هذا به قدوم عبی شکر خدایی که شرف داد به این خانه به خاطر قدم گذاشتن پدرش یعنی پدر کعبه رو کی معرفه میکنه آقا اب عبدالله نشون یه دست کعبه رو داره نشون می‌ده، نشون عبدالله میگه شرف پیدا کرد شر... کعبه و اینا کعبه شرفی نداره بدون امام. مسئله امام که مسئله کعبه. ال... تو باید بری سراغش. تو بعد بری دورش بگردی. اصلاً امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمد تا بفهمی، تا بفهمی خدا با حضرت مریم چهجوری صحبت کرد تو قرآن. تو برو بیرون خواست بچه به دنیا بر تو خونه خدا گفت تو خونه خداست اینجا زایشگاه نیست برو بیرون تو مستدرک حاکم نشابوری جلسه نوشته حاکم نشابوری صد هزار حدیث هبس بود از بزرگان اهل سنتی تو مستدرک اومد یعنی تموم یعنی در بر مبنای روششناسی صحیح مسلم و صحیح بخاری بوده که اون دو تا صحیحه اینه تو کتاب اهل سنت میگه به فاطمه بنت اسد گو بیا تو بیا تو سه روزم اونجا بود. هنوز که کنوزان ترک دیوار دیدید روشنایی مانی؟ هی hey, ترک میخوره هی hey, میخوان بچسبونن دوباره ترک میخوره یکی از برنامه شما میدن که تخریب خونه کعبه و ساخت دوباره شه به باغانی که بزرگتر میخوایم بسازیم به باغانی که ما برنامه ترکه رو بکشن بذار بزنین ترک دیوار هنوز که همزده ترک میخوره هی hey, بتن میزنن هر کاری میخوان مونده تراکشش هست توی تراکش رو ببین من کانب ال امس اصبح قبله اینی که تا دیروز یه خونه بود تازه امروز شده قبله چرا چون حسین علیه قبله کی توی امام قبله توی. اصلا این ارزش پیدا کرده به تو به قدوم تو. حضرت عباس داره میگه اینا رو بعد حالا میفهمی چرا عباس میشه عباس تنها امامزاده که نماز زیارت بر خودش داره برای امامزاده ها میرید نماز زیارت بخونید بدعته در دینه نماز میخونید مستعبی ثوابشو میدید تنها امام زاده ای که نماز زیارت برای خودش در عین معصومیت عباس بگی کمه ببین چجوری جوری امام شناسی رو ببین تمام این سه چهار جلسه که حرف ببین تو صحبت عباس ابن علی میبینی یا نه ببین همون سرات رو می‌بینی یا نه ببین همین با امام رست کردن رو می‌بینی یا نه براعت رو ببین میاد از تو سلام عباس بیرون میاد یا نه ببین چی میگه به حاجی‌ها به حاجی‌ها به مسلمان‌ها همه کلا رو تراشیدن نجست دادن ها ای الفجره ای کفاره فاجر جایی که امام نباشد کافرید صحبت اون چی بود از کف کفر شیطان تو چطور به خدا که کافر نبود تو خودام یه کافر کانمن کافرین. او کافر و خلیفه الله بود من اینو قبول ندارم تو رو که قبول دارم خدایا هزار تا آیه تو قرآن حالا هزار تا من باب کثرت میگم کلی آیه قرآن داریم بیا شما نگاه بکنید چطور خدا رو قبول داره به خدا حرف میزنه ان اخاف من الله رب العالمین من خودام از خدا رب العالمین میترسم چیتون بگه ايها الكفرت الفجره کفار فاجر اتسدون طریق البيت بيت لامام البارره من هو احق به من صائر البریه ولد فرزند علي هم هست نثرش مسجعه خطبهش مسجعه آهنگینه میگه چی شده راه بیتو خونه رو میخواد ببندید بر امام این خونه بر امام نیکی ها چه کسی بر این خانه حق است حقش بیشتره من سائر البریه نسبت به کل موجودات و من هو ادنا به چه کسی به این خانه نزدیک داره؟ حالا بذار بهتون بگم بذار بهتون بگم ادامه میده حضرت عباس حضرت عباس میگه بذار بهتون بگم و لولا حکم الله اگر حکمت الهی نمی بود الجلیه حکمت جلی خدا نمی بود و اصرار حالیه و اون اسرار عالی خدا و الهی نمی بود و اختبار بریه و این برای این موجودات کنار خدا در نظر گرفته لطار البیت الهی قبل انگمشی الهی می دیدید که این خونه پر در می آورد بال میزد به سمت امام من قبل از این که او به سمتش بره. هست که قوانین الهی و جبر خدا خواسته که اینطوری بشه اگر نمی بود این قوانین ببین امام شناسی رو خداوکیله نگاه کن در مورد امام چه جوری داره حرف میزنه قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يده ای داد بیداد مردم میرن سنگش رو به سنگ میمالن نمیفهمن که این سنگ خودش را متبرک میکند به دستان حسین مردم دست مادن به سن. کعبه را سنگ کعبه یک سنگ نشانی که ره گم نشده سرات نباید گم بشه حاجی یه فکر دیگه به حالت خودت بکن نه اصلا خدا میره چی کار کرد یه کعبه سنگی درست کرد یه کعبه امامه و گفت دستور داد گفت برو بشکن حجو ببینم حاجیای های واقعی با تو میان یا نه خیلی قشنگه ها فلزا حجو باید تو کجا ببینی اصل حج تو کربلا طواف امام اونجا قشنگه اینایی که طواف امام هم. اینا اسمشون تو لست جبرئیل بود از قبل اینا آدمای عجیب غریبی بودن ولو ولو لم تكن مشيه مولايا مجبوله من مشيه الرحمن و اگر نمی بود خواسته مولای من که عین خواسته خداست <تصفيق> سرات رو اینجوری قشنگ تعریف می‌کنه عین خواسته خداست یعنی هیچ شبهه‌ای با چی میگه؟ لو وقعت عليكم كصقار القزبان على اصافير الطيران مثل باز شکاری که بالا سر گنجیش می اومدن بالا سرت. حکم جهاد از سمت امام نداره. بی شرف اومدید برای ما شیر نشون میدید. اگه میزاش که نزاشتن امام میگه ن از ترسه که این نزاشتن کیه؟ خداست. میزاش این باز شکاری بالا سر جون میمدم تا بفهمید تو خ قو من یا اببل معوت تفولیه و کیف میگه داری قومی رو از مرگ میترسونه که با مرگ تو بچگی بازی میکرده تو دریافت رجلیه وقتی اینا مرد باشن چ میکنه. میگه ما یه قومی هستیم که تو بچه هیدری هیدر کرار به لافرار زیر همیران پشت نداشت. کسی پشت نکرده بود علیم. ما بچه علیم ما رو جنگ می ما رو دعوی میترسونیم ما تو بچگی با مرگ بازی میکردیم حالا که مرد بزرگیم چی؟ تو خود دریا یا بینو و لفدهی تو بالحاماد لسید البریات دون الهیوان جانم به فدای آن مولایی که از تمام زندگان و موجودات بردرد نگاه کن تو رو قرآن نگاه کن وسط دعوی وسط براعت یه حبی هم ببین چقدر جوره وسط دعبا داره نرخ تایی میکنه آدم وسط دعبا داره نرخ تایی میکنه وسط دعبا داره نرخ ببین وسط دعبا, ببین وسط دعبا. یه الهی من قربون اینم راستی برم ها. یه یادش مفته کیو در مرده کی داره صحبت میکنه بعد یه قربونت برم بگه یه محبت نشون بده اینه نمیشه این کاریکاتوری نیست براعت کنار محبت حیحات حیحات حیحات ثم سمنظرو نظاره کنید و سپس نظاره کنید ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوز و الکوسر یه طرف خاک بر سرتون کجا دارید میرید؟ نظاره کنید این یکی شارب الخمره این یکی صاحب حوز کوسره کجا دارید میرید؟ نمیبینید؟ ببین برایت رو نگاه کنید چقدر قشنگ میگه وای بر شما جاده به این مستقیمی آسفالت خوب تابلو گذاری شده شب نما داره همه چی به این خوبی بعد داره این تو جاده خاکی باره سنگلاخ کدوم آدم آقل این میکنه حضرت می میخواد ازش و من من فی بیته الوحی و کسی که تو خونش وحی و قرآنه و من من فی بیته اللحوات والدنسات اونی که تو خونش نجسات و لحب و لعبه باز دوباره همون یادتون باشه کسافت یک طرف نور یک طرف خوک یک طرف پاکی یک طرف و من من فی بیته تطهیر والعیات و اون کسی که تو خونش اصلا این خونه آی تطهیر مال این خونه است مال این خونه است کجا اینا رو یکی گرفتید که امیر المومنین یزید گفت هنوز داستان زنده است الان این سلفی ها توی سوری دارن می جنگن می از ابن رضی الله عنه لعنت الله که خدا از او راضی بود به یزید میگه امیر المومن. گفتم تو سخنرانی ها. توی پیروزی هایی در القصه ایر داشتن بچه الله لبنان میگه تو جنگ 33 روزه بچه هزبالله لبنان 47-48 تا شهید دادن توی خدمت شما ارز کنم تو نبرد قصه 278 تا بعد با این خلو چهلا جنگید متاسه کنه درگیرمون کردن به اینا یهودی‌ها اینا رو انداختن به جونمون بعد یه جضوایی پیدا کردن تونجا اونجا نوشته و هدف ما این است که ظهور معاویه سانی را برسانیم اینا مستند ندارم بهتون میگم انگار خود من خودم دیدم اینجوری فرض کردم ظهور معاویه سانی رو تجیلش کنیم و در شام در دمشق مجسمی بسازیم از امیرالمومنین یزید ابن معاویه در حالی که سر حسین ابن را در دست راست داره هنوز جریان زنده است. خدا شاید. هنوز جریان زنده است. ببین کی پشت سر این سلافی عربستان. چی دست بشه؟ مکه. کعبه. همون سنگه. همون سنگه. قطر. ترکیه. ببین کیان. ببین کیان. خیلی بازه من نبینم چه مردم قاطی میکن تو آخر زمان. از هرومون شمسه. وانتم وقعتم في الغلح. شما افتادید تو همون اشتباه و غلطی که الاتی قد وقعت فیه که قبل از این قریش افتاد تو اشتباه چی بود اون اش اش لانهم لانهم برینک اونها ارادو قتل رسول الله اونا میخواستن کیو بکشن؟ اراده کردن برای کشتن رسول الله و انتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم و شما میخواید بکشید پسر دختر پیغمبرتان را یعنی نسب امام حسین طریق حضرت زهرا رسون به آقا رسول الله درسته اینو آدم شدن بگید یا نه اما حور تا گفت یادش افتاد مادر امام حسین کی آدم شد؟ فرق تو همینجاست که کی حور میشه حورم از همین صفاره هم از همین از ها. یزیدیاس و ابن زیاد فرستادتش با دو تا واسطه داره دستور از یزید بن معاویه میگیره اون این برایش برای همه این حجاج آجیان نصب مادری موسیقی میگه نمیفهمن او یه دونه اونجا میفهم خیلی مهم ها و لهم اما ممکن نشد براش که پیام برا بکشن چرا؟ مادام امیر المؤمنین حیا تا موقعی که علی زنده بود بگید نتونست لیلت المبیج میره جاب رسول الله میکن روز او خود میچرخید تواف میکرد دور امام زمانش حضرت امیرالمومنین دور رسول الله دور امام زمانش تواف میکرد نوت تا زخم برداش لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار خدا سرود براش اهل سنت تو کتاباش میگن انقدر زخم برداش امیر المومین مرحم میخواستن بذارن حضرت تو ملافه پیچیدن تمام بدن زخم حالا جالبه حضرت امیر نقل میکنه میگه که خیلی درد کشیدم شمشیر زخورده دیگه میگه فقط به محض اینکه فاطمه رو دیدم گفت خدا قوت همه عجب اونجا حضرت زهره چی به امیران میگه میگه پاهم زمان زمانت وایستادی یک هیچ حساب میکنم پاهم زمانم وایستاد و وایستاد چه فر نعرهای حیدری میزد از از مادام امیر و کیف یمکن لکم قتل ابی عبدالله و چطور بر شما ممکن میتونه باشه قتل حسین ما تو حیین سلیلا تو موقع که من زنده هم. و تو زنده بود کسی چپ نگاه نکرد به هرم نکرد به اون سمت بده یعنی چی من علی حسینم؟ یه علی برای پیغمبر چه نخش داشت من همون نخشو برای حسین ابن علی دارم حالا عباس باید یه دونه یه دونه این جریان باشه یا نه باید در وصفش امام صادق در زیارت معصور بگه رفع الله ذکرک فی الیین عباس خدا نام تو نامتونو در میان الیین بالا برده است خدا تو قرآن میگه و ما ادراک ما الیون آخه شما چه میفهمید الیون کیا بهش الیون خدایی توضیح نمیده آقا هم ساده میگه رفع الله ذکرک فی الیین تو الیین نام تو عباس میدرخشه میگه مقامی عباس ابن علی داره که تمام شهده قبطه میخورندش. برای چه عباس اینجوری شد؟ چون برادر امامه به خدا نه. به خدا نه. تحت تربیتی ببین کیا بوده امیر رو درک کرده امام حسن رو درک کرده امام حسین رو درک کرده او سه امام درک کرده پا منبر سه تا امام نشسته یه میشه دیگه می تا موقعی که من زنده باشم که میگه یه روزی یه عالمی بوده تو حرم حضرت عباس بره یک حرف خیلی سخیفی میزنه میره میگه استاد اصول و فقه بوده میره میگه که عباس فقط جنگاوری داشت در دین من فقه و اصول هم میدانم ملا میخواید بگم بزننش مردو پا منبر نشسته گفت یک کتک درست حسابی بزن بخواد حرف مزخرفه شب میره خونه و اینا میگن تو حرم بزنی مش بی ادبیه بزرگتر هست آقا حضرت عباس بی ادبیه خودش اگه میخواست می‌زدش بس در خونش حسابی بزنیمش نقشه می‌ریزن میگن این که برای مسجد مخصوص بیت بره اونجا می‌ریم حالیش می‌شیم تو فهمم میگن غلط تو نکن بعد میگن در خودش نمی‌یومد چی شد و فلان و زنش میگه رفته حرم میان می‌بینن که یه تناب بسته به گردن خودش بسته به زریخ زار زار داره گریم بعد میگن چی شده؟ میگه من رفتم خونه خوابیدم عباس به خوابامون دیدم همه علما جمعن اومد تو تمام علمای تراز اول همه بلند شدن بعد برگشت به من گفتش که من اگه از منبر علی و حسن و حسین از هر کدومشون یه حرف شنیده باشم فخ و حصول میدونم نه چون برادر امام و پسر امامه که جعفر کذاب هم برادر امام بود هم پسره نه پسر نوح هم بچه پیغمد نه برعکس بر... اصلا اصلا به برادری اشاره نمیکنه شما می بینید ها اصلا اصلا آ... آقا عبدالله آرزو به دل مونده یه بار بگی داداش نمی گفت وقتی کارشو تموم کرد اونم برای اینکه که آرزو به دل نبونه مولاش گفت اونم چرا چون بیبی از زهره آمد یا ابو نیبش گفت گفت تموم که پسر منی اون زمان خوشی باشه با اخا ادرج اخا حالا بیا یه خیلی قشنگه عباس اینه تعال و اخبركم به آ بیا بهت بگم اگه می‌خوای من بکشید بکوشید چیکار بکنید با درو قتلی اولات منو بکوشید وزره بو با اونقی گردنمو باید بزنید همین کارم چد همین کارم چد بس رو بو لیحصل لیحصل مرادكم تا رسیدید به مرادتون اینجا لعن میکنه نفرین میکنه حضرت. لا بلغ الله لاه مداركم و بدد اعماركم و اولادكم و لعن الله عليكم و على خدا شما را به مقصودتان نرساند و عمرتان و فرزندانتان را کوتاه کند و لعنت شما و لعنت خدا بر شما و بر پدرانتان که قصد کشتن بر را داشتند شما بچهای هم اونایید اینه عباس حضرت عباس میخواد عین امام زمانش بشه، شبیه میشه. باراتو سخنرانی، سخنه ویژه در مورد حضرت عباس داشتم اونجا گفتم شما اگر بعد از این خطبه کلمه از عباس ابن علی شما شنیدید. اولی امام حسین گفت بریم، اولین کسی گزینش شد. اصلش زینچرا و بش داده. پشیم بریم. چه چیزی صداش در میاد دوباره؟ شب را وقتی چراغ رو خاموش می‌کنه. شما حسین میگه هر یک از شما این شب را همچون شطوری رهوار بگیرد و دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و ببرد که اینان فقط با من کار دارد بریدی را با شما کنه فقط با حسین مشکل دارد بخونید یه نخست این کسی که لب به اعتراض گشود عباس ابن علی بود کجا بریم؟ راه تویی؟ ماه تویی؟ و کجا دارم برم؟ همه چی تویی؟ از تو بیرون رفتن یعنی چی؟ مگه میتونم بذارم برم؟ ترمه گفت یا ابا عبدالله من بدهی دارم گندم و مردمت پس بدم برم حضرت بهش کفت برو اما زود برگرد, برگرد دی... برگشتی تمام شده میزد تا آخر عمرش تو سرش میگفت ایداد وقتی امام زمانت میگوید برو و زود برگرد یعنی نرو یعنی نرو از اون قافله تو قافله بود ترمه ها اومد خیلی اومد تا کربلا اومد تا کربلا اومد جدا شد یعنی حواستمون باشه میگه آ طرف تو راهه دیگه تو مسیره اینطور نیست هر لحظه میتونی ببری ما مشکلات مالی و ازایزمون زیاد داره یکی گفتش که من به شرطی به تو پول میدم که چیکار بکنی من مطمئنمش تو تو مسیر میمونی گفتم خدا وکیل نمیتونم بتزمین بدم چرا اگه تضمین بدم فاسقم دروغگو هم ایمانم زیر سواله چون هیچ کس نمیتونه چه تضمینی بده زبیرو وقت آدم میبینه ترمه آدم میبینه قیسو میبینه قیس می تو تا قبل حضرت عبدالله تو کربلاست یعنی حضرت عبدالله آخر نفره دیگه که دیگه میرزه سر امام حسین بچه دوازده ساله دستشو میکردس از از زینب میدو خوشو مینذ رو پیکر امام میخوان دستشو میگیرن دور شمشیر این تا قبل حضرت عبدالله اونجا میگه حسین جان موندن من دیگه فایده نداره دیگه من گفتم شاید یه فرجی بشه اما نمیشه من رفتم حضرت حمیدله گفت با چی میخوای بری گفت از قبل اسب کردم تو چه این سقوط کرد کانمنل کافرین همون موقع که اسب وقایم کرد. دیدی چه شد؟ کانمنل کافر. او چه بدبختی بوده. او چه بیچاره‌ای بوده. یعنی تو اون خیمه شب عاشورا هم این رد کرده. الله واجعل. هر لحظه ممکنه برگردن. این هر لحظه هیچ امیدی نیست به خاطر من دو دستی بذ امام تو بچسبی. آدرسی نیست بیا برو اینوری نه در امام مو قرار رو روش کن. عباس عباس داستانی داره عباس هی دنبال این بود شبیه امام زمانش بشه اونجا بلند شد لب به اعتراض گشود و به خاطر همینم هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند ادعا سنگینه برای امام زمانش بگید باید اثبات کنه. عباس و هر تیکچه متحره حروف مقتعه شد عباس هر تکه از بدن یه جا افتاد دوست داره حضرت عباس براش روزه بخونید برای امام زمان نبر روزه خون که امام وسلم اینجور تو قتلگاه کشتن اشتباهه نبر روزه است که قصابت قلب بیاره بخون یه اشاره جزی بشه که تو تاریخ پس برای نگن نبود مقاتلم هم نوشتن که برای کسی بدن زیرش نزنه چرا چون قصابت قلب میاد؟ تو اگه بر سربوریدن امام حسین گریه کنی خب عمر صادم گریه کرد با چه فرقی داری؟ به منو تو اگه امام شناس بشید امام حسین راه افتاد بعد بمیری تو میدونی داستان آخرش چیه تاماقی که بر سربوریدن امام حسین گریه میکنی یا یعنی امام حسین نیا تو من فقط بر کشته شدن امه گریه میکنم نه در یاریشون اما روزه روزه کسایی که رفتن بر اهل به شدی شدن باز بخونید تا میتونید باز بخونید سند دارم. آقای قزوینی طولیت داستان مطره حضرت عباس بود. واعظ خراسانیم رفت بالا منبر تو حرم. شروع کرد روز عباس خوندن. روز بازم داشت میخون عباس بر اسمش نشست اومد دست راستشو قطع کردن. گفت والله ان قطعت موی یمنی انی اومی دست چپ داد مشه. اسل شاپشو قد کردن به دندان گرفت تیر زدن عمود آهنین زدن از, از اسب خاص اینو بگه آیه قزویلی بولا شو دادو میداد اون وقت بردسوب اینو چیه میگی دلش نمی옴د بردسوب اینو چیه میگی با سند حرف بزن اینا کجا بود خو این ندم داره گفت نازو رو به به زد شب رفت تو خونه خوابید حضرت عباس بخوابشون گفت به تو چه رابطه داره میگی تو روزه ما رو به میز تو کجا بودی وقتی که دست راستم رو اینجوری زدن دست مشک رو دادم به دست چپم چون مولا ازم آب خواسته بود با مشک کار نداره به تیک پوست مشک حرف مولا شو گرفته چی شد اگه هر هرچی برو بیار برای همون رو همونقدر جون میدادم باز دست چپم رو زدن به دندان گرفتم میرفتم ببین حرف ممزنش رو چنگ رو دندان افت کرده به دندان کار اونجا خراب شد که تیر به مشک, به مشک. چی کار چی کجا برم اصلا کجا آب میخوام برای چی می‌خوام؟ تموم شد. امام زمان من از من یه آب خواست، نخواستن. من شرمندم. برای همین نمی‌ذاره ببردش با حسین. اونجا اون خیمه حرب که جنازه ها رو می‌بردن، جنازه شهدا رو حضرت عباس نبردن. حتی امام حسین پاره های تن علی اکبر رو جمع کرد برد، اما حضرت عباس رو نبرد. گفت من نمی‌رم، چیزی من نبرم. من برم اونجا بگن وای بر تو، یه آب ازت خواست. شرمت برای همین باب الهواز شد بعد در ادامه چی میفرماد حضرت میگه تو چه میدانی کسی چ از ارتفا... این, این تیکه روزیکش یانیدی مال خو... گویاندش خود حضرت عباس تو چه میدانی که کسی از ارتفاع بیفتد بیده بی, بی چقدر سخته است و تیر بر چشمانم زدن عمود آهنین بر سرم زدن اصلا عجیب روزه میخونه حضرت آیه قزوینی فرداش میاد گریه میگه غلط کردم غلط کردم این عزیز دل من. حضرت عباس این حرف امام زمانشه امام زمان امروز ما عباس میخواد با چنگ و دندون یعنی وظیفه شناس باشه بگه امروز اگر عباس ابن علی میبود کدام حرف مانده بر روی زمین امام زمان را برمیداشت علم تو بین اعراب خیلی اهمیت داره علم عشیره. خود اینا میگن نقل کردن ابن زیاد وقتی علم و دید گو علم کی بود؟ گفتن چطور؟ گفت تمام این علم رد تیر و نیزه است جز همون جایش که دستو گرفته بوده. یعنی اونجا اون علم اشیره نیست. علم یه چوب و یه آهن و یه تیکه پارچه نیست. اون چیه؟ آبروی امام زمانه واسه حفظ کنه. و عجیبه ببین امتحان الهی دقیقا چی باید دست میده؟ دستو. همونی که وقت باش بگیری علمو. دستو از دست میده همونی که وقت باش بگیری. عجیب مینات حضرت عباس رو تو بفهمم چی یک شخصیت هست توی تاریخ من موندم باید روز باز در موردش خونده بشه یا نخون خونده نشه نمیفهمم از یه طرف جزء معصومینه از یه طرف با هم زمانش واسطه ده کیه حضرت زهرا سلام الله نمیدونی باید روزه در و دیوار درست بخونی یا نخونی اما من هر چی فکر میکنم سیره علما رو میبینم میبینم روزه رو چکار کردن خوندن تو ببین امامت چیه را میرفت خوشت امیر المومین اونا میگفتن توحین میکنم امیر المومین گفت گور پدر همه اینا خیرو که خیری شر رو که خیری تو که شر نداری همه چیت خیر علی اینا نمیفهمن چونان ابای امیر المومین چسبیده بود که اگر اون حرم لغمه با قلاف شمشیر نمیزد که نمیتونستم، به مردونه میکشیدن از یه طرف گفت من کم نیابردم عبای تو پاره شده دستانیه بعد نگاه کن چون پا امام زمانش وایستاده میاد امام زمانی ها رو همه رو میخره یکی چون کیه؟ عباس سرورشون عباس بعد او دنیا هم به عبابت شفاعت گفتیم رواهت میگه دستایی کیو میبره؟ عباس میگه خدایا تو رو به اینها قسم میدم اینو اینو اینو اینو اینو میگه مثل پرندهی که دانه بر میچینه شیعانه حسین رو بر برمی‌داره. شیعیان علی رو برمی‌داره، میگه این،, این این. چرا؟ چون مصیبت دیدن شیعیان حسین. چه جور مصیبت دیدن؟ مصیبت حسین دیدن. عشق ریختن. یه جور گریه میکنه، گفت ننه باباشون به این جوری گریه نمی‌کنن. عجب. عشق... داره انگار من بودم گریه کردم. دیگه. من برای تو من با این کاری ندادم. میخواد هر لحظه عباس به امام زمان شبیهتر بشه، داداشوشو میاره. داداشوشو میاره، میگه ببین اون جعفر فلان آه حواستون باشی پس فریخ توهم نزنید بگیدین داداشمون این آقاها توهم نزنید او امام ماست و او فرزند فاطمه است قاطی نکنید حواستون باشه. سوگند بخورید با من بیعت کنید با عباس که تا ما زنده ایم اجازه نخواهیم داد او به میدان برمد و نزاشتن ام ملبنین که روزی اسمش شد ام ملبنین کنیه شد یعنی مادر پسران بی پسر شد نباید فرزند زهرا بمینه تا مگه که مو نباشه وقتی نیستم چیکار باید بکنم وقتی نیستم چیکار باید بکنم وقتی دیگه اومدن بلدیزر انداختن خود سراتو بزنن ابو عبدالله لحظه قبل از شهادت که بهش حمله کنن بلند میشه یک فراز عجیب غریب داره بلند میشه رو میکنه به سمت کوفه میگه هانی کجایی بیا مسلم کجایی بیا میگرده به سمت حضرت عباس چیک پیغمبر مرتضی حضرت عباس افتاده میگه عباس بلند شو بیا اینا چیکار داره میکنه داره چنان حجت تمام میکنه که امام زمان از مردگان داره طلب یاری میکنه شما زنده اونور دید عجب داست یعنی داره همهشون اونا دیگه دارن جننمی میشن تمام کسایی که این صدا رو بشنوه حضرت به او قیس چی گفت وقتی گفت پس برو دور شو خیلی دور شو تا صدای حلم الناصر ما را نه شنیده اون کجا بده میخواد شبیه بشه بعد تبری تبری تو تاریخش آورده میگه عباس همه رو زودتر از خودش داداشتش فرستاد پرستاد به میدون تبریه نقل مزهکی که اونو کار ندارم مثلا در حد جلسه ما نیست وقتی از عباس پرسیدن چرا داداشت رو زودتر میفرستی گفت امروز مولایم هم داغ برادر میبیند میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه به شوم قراره هی hey خودمون رو تو این سر... سراد فرو ببریم هی hey شبیه این راه بشیم شبیه امام بشیم تا ما هم نور بدیم نور جذب کنیم تا نور بدیم گفتم خوام شبیه بشم عباسی که همه چی داره خوشگلی داره نبرد داره ادیبه فقیه پهلوونه حجت رو بر همه تمام کرده بر همه میخواد بگی چی من دارم که کسی دیگه نداره عباس داشت اینو چند جا گفتم دلم نمیاد به خدا قسم اینجا نمیاد. دلم نمیاد میشم شب عزاد عباس برای ما شد شب عزاد عباس حسودی یعنی اون چی من یه چیو ندارم یکی دیگه داره حالا ما نیست من دارم یا ندارم میگم اونم نداشته باشه بعدش میشه قبطه من ندارم اون داره میگم خدایا اون داشته باشه من کاش ما هم داشته باشیم از اون بالاتر میشه کرامت کریمه خب قبل اون چی کسی چیزی بگه خودش میره بهش میده این داره دیگه اون نداره اگر او بگه به من بده میشه سخی اگر نگفته برمش بده میشه کریم بعد از اون یه لبیل دیگه هم هست این داره اون نداره چون اون نداره نه که نمیتونه بده. چون نمیتونه بره بده چون نمیتونه بره بده این هم اصرف نمی کن. این دیگه آخرش دیگه بعد این مواسط بهش میگن وقتی با اسب رفت به نهر زد تا زیر شکم اسبش رفت تو. آب با سرعت رفت از تو بخواد خودش ج واستاد عقل میگفت آب بخوری اینجا هرچی اینجا آب بخوری اونجا کمتر آب بخوری آب بخور با انرژی بیشتری آبو ببری ها؟ همه چی عقل میگه چی بخور آب آورد بالا شکست این پیمانه دستشون ریخ رو من دارم او بگی نداره من بخورم تمام کرده اخلاقات مکارمال اخلاق یعنی عباس اینجوری عزیز دلم اینا چسایی بودن؟ مهجه اون خونه توی قلب و میگن. عرب برای هر چیزی اسم داره. سار خونه ریخته شده است. دم خونه توی رگه. مهجه خونه توی قلب و میگه. وقتی گوسفند و سر میبورن مقدار خون توی قلبش چی؟ میمونه. میگه اینا یه جوری خون دادن برای حسین که خونه توی قلب ته قلبشون هم دیگه خالی شد. مهجه اون مهجه هم دونال حسین علیه این بودن ایشی مثل عباس ابن علی علیه السلام رو امام شناس، راه شناسه. با او بری با او باید پیش بری برای همین آقا صحابه زمان فرمود من کجا میام اونجا که روزه اموم عباس باشی. یعنی شرط یعنی راه ظهور من و شرط ظهور من و آدرس ظهور من عباسی شدن شما هاست عباس بشید من عباس دوست دارم من عباس دوست دارم داشته باشم ندارم ندارم من جگه روز عباس بخونن کسی کی که واسه امام زمانش اینجی رو من اونجا میخوام باشم. آقا عبادی شعر قشنگ از زبان عبا عبدالله در وصف حضرت عباس خطاب حضرت عباس میفرماد آماده باش مقصد ما در سفر یکی است. حضرت عباس میآماده باش. سرهای من جداست بلی بال و پر یکی است. اینها برای کشتن ما سرکشید. اینها برای کشتن ما سفت از هر کجای دشت به پرسی خبر یک دار و ندارمان همه در بین خیمه هاست. آتش که شعل برشبد خشکتر یکیست. حتی به روی اکبر من تیغ میکشند با این که با پیامبر از هر نظر یکیست. تنها به این گناه که فرزند حیدریم بغزند لبیدی تنها به این گناه که فرزند حیدریم تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست. آیا کسی نمانده که یاری کند مرا؟ آیا کسی نمانده که یاری کند مرا اینجا میان این همه لشگر اگر یکیست؟ عباس من، برادر من، نور چشم. عباس من برادر من نور چشم من طرز مساف کردن تو با پدر یکیز تنها رجز بخان و بگو یا علی مدد، در چشم شیر یک نفر و صد نفر یکیز از بس حروف پیکر پاکت مقتع است از. از بس حروف پیکر پاکت مقتع است پایین پای مرغد و بالای سر یکیست شمشیرها به دور تند حلقه میزنند شمشیرها به دور تند حلقه میزنند چون جمع تیرها همگی زر بدر در یکیست بعد از من و تو زینب اگر نشنود بدان بعد از من و تو زینب اگر نشنود بدان خونین بدن زیاد ولی خونجگر یه چیز پیشانی سپاه منه شه سبار من ای شمشیروار من یه حضرت عباس وقتی شمشیروار بود جلو می اومد فرمانده لشکر بود علمدار دار بود وقتی سرار هم داشتن می بردن داشتن نگاه میکنن حضرت زینب فرمود سر عباس رو ببر جلوتر سر عباس رو بری جلو توی سرها هم پیشانی باز عباس بود پیشانی سپاه منه شه سبار من ای شمشیروار من بر روی نیزه نظرهاشان بر یکی است میگه اینا تو رفتی فقط تو نگاه کرد ناموسم در امان بود قرب ستاره است تن من ولی هنوز ابو عبدالله میگه قرق ستاره است تن من ولی هنوز در آسمان بی کسی من قمر یکی يا الله عليك یا آبا عبدالله و علال ارباه اللتی حلت بفنائك و الله على القوم الظالمی اللهم عجل لولییک الفرد و العافیت و من خير عوانهی و والمستشهدين و المستشهدین بین یدائه تعجیل للفرد و قطبه حضرت صاحب الزمان زمان صلوات اینایت بفهم